Thank you. داستان دوازده هم، و معذور قطار اکسپریس شر وارد ایستگاه راه آهن ای در پاشا شد کسانی که برای استقبال آمده بودند به طرف درها و های قطار دویدند باربرهای ایستگاه، چمدانهایی را که از ها آویزان شده بود، بخر کردند مسافرها که از تکانها و سر و صدای قطار خلاص شده بودند از قطار پیاده شدند و با نگاه‌های خسته و گیج دنبال کسانی می‌گشتند که به استقبالشان آمده بودند. بعضی ها هم کیف و ساک و سبد به دست به طرف ایست میرفتند این سر و صدا و شلوغی پانزده دقیقه طول کشید. قطار خالی شد. سزن، جارو و خاکانداز به دست برای تمیز کردن کوپه ها وارد قطار شدند. یکی از زنهای نظافتچی رو به دوستش کرد و گفت بیبی، انگار اینجا یکی هست. از یکی از کوپه های واگان سه صدای خورناس شدیدی بلند بود. وقتی دو زن نظافتچی در کوپه را باز کردند، سه ژاندارم را دیدن که داخل کوپه خوابیده بودند. اما این خواب به خواب معمولی نمی رفت. یکی از جاندارم ها روی زمین دراز کشیده بود و سرش رفته بود زیر سندلی. جاندارم دیگر روی سندلی بود اما او هم سرش پایین افتاده بود و زانوهایش رو به بالا خم شده بود. ژاندارم سوم پاهایش را جمع کرده بود و روی ژاندارم دوم خوابیده بود. خورناس سه ژاندارم به سر و صدایی وحشتناک تبدیل شده بود. توفنگ های ها هم این طرفان طرف انطرف افتاده بود. دو زن نضافت خندهشان گرفت؟ یکی از زنها فریاد زنان گفت آهای بلند شید ببینم اینجا آخر خطه هی در پاشه است از سه جاندارم صدایی جز سه خور و پف شنیده نشد آهای بلند شید دیگه نظافت چی که روسری سیاه سرش بود با دسته جارو به پاهای جاندار میزد كه که روی زمین خوابیده بود انگار نه انگار آهای یالا بلند شید اینجا ایستگاه آخره یکی دیگر از زنهای نظافتچی با خاکانداز زد به جاندارمی که روی صندلی خوابیده بود. اینها انگار شش ماه نخوابیدن. فکر نکنم حالا حالاها بیدارشن. به یکی از کارمندهای ایسکا خبر دادند. کارمند آمد. به ها سقلمه زد. تکانشان داد. اما هر کاری کرد نتوانست بیدارشان کند. چند باربر ایسکا با چند کارمند دیگر آمد. هر کاری کردن نتوانستند سه ژاندارم را بیدار کنند. یکیشان گفت، روی صورتشون آب بریزیم. اینطوری بیدار میچند. اول با دست از آب توی سطر روی صورتشان آب پاشیدند. وقتی دیدند فایده این ندارد و این بیدار نمیشوند، روی سر هر کدام از جاندارم ها یک سطر آب خالی کردند. آب تاثیر خود را نشان داد. ها بیدار شد. بعد دوباره خوابیدند. صدای خورناسشان بلند از قبل شد. به افسر دژبان ایسگاه خبر دادند. یک سطفان دشبان با دو سرباز دشبان آمدند. آنها هم هر کاری کردند انگار نه انگار. سه جاندارم را نمی توانستن بیدار کنند. دست و پای جاندارم ها را گرفتند و کشان کشان از قطار پایین آوردند و به دژبانی ایسگاه بردند. فک هایشان را توی دژبانی گذاشتند و ژندرم را با جیب به بیمارستان نظامی بردند. در بیمارستان آنها را در آسایشگاهی سی تخت خوابی خواباندند. دیگر شب شده بود ها نمی ژاندارمان نمیگذاشت مریضهای توی آسایشگاه بخوابند. دکتر کشی که ژندرم را معاینه کرد چیزی سر در یاورد. تپش قلب و فشار خون عادی بود تب هم نداشتند فوری توی بیمارستان چه افتاد سه تا جاندار ما که از خواب بیدار نمیشوند مریضها از بقیه یا سایشگاه ها هم برای تماشایشان میآمدند. فردا فردای آن روز حدود ساعت یازده خورناس ها کمی فروکش کرد. ساعت یکی بعد از ظهر خورناسشان کاملا قطع شد. یکی از خدمتکارها که دید جاندارها دیگر خور و پف گفت. با این همه خور و پف مگه خورناس می مونه. بی انصفا هرچی خورنست بود مصرف کردن ساعت چهار بعد از ظهر ژاندارم قد کتا اولین نفرشان بود که بیدار شد به محض بیدار شدن فریاد زد آبو با تحجب آدم هایی که دورش جمع شده بودن نگاه کرد بعد به هم قطارش که کنارش خابیده بود سقلمه ای زد و گفت آهو جمو وخی، زود وخی جمو جمو بیدار شد که و قوسی به بدنش داد چشمهایش را مالید نگاهی به دوستش انداخت بعد نگاهی به جمعیت دورو برش انداخت و گفت اینجا کجای قربانت بگردم؟ جاندارم قد کوتاه گفت من چه بدانم برار؟ بعد سغلمهی به سومین جاندارم زد که آن طرفش خوابیده بود وخی برار وقیه نگاه و کنیم، وقیه بیدار شدن سوامی جاندار مثلان دوتای دیگر نبود همین که بیدار شد از جا پرید و پرسید نکنه به اسکی شهر رسیدیم ژاندارم قد کتا هم از او پرسید نکنه ای در پاشا باشه آدم هایی که دورشان جمع شده بودند به گیجیشان میخندیدند موقع خواباندن در رخت خواب هایشان را درابرد برای همین فقط، عرق وزیر و زیر شلواری تنشان بود. تمو که آخر از همه بیدار شده بود، جوانی زبروز رنگ بود. چند بار سرش را به چپ و راز چرخاند و اطرافش را نگاه کرد. سعی می بفهمد کجا آمدند. بعد یک دفعه انگار اغلش سر جایش آمده باشد، فریاد زد. زندانی ها کجان قربانت بگردم؟ مثل تیر از جا جست و توی آسایشگاه شروع کرد این طرف و آن طرف را گشتند. او که پرسید محکوم ها کجایند؟ دو جاندارم دیگر هم اغلشان آمد سر جایش. آنها هم شروع کردند به داد و فریاد. زندانی ها کجا برار؟ کجا رفتن؟ ای وای بدبخ شدیم رفت. تو سر خودشان می زدند و توی آسایشگاه این طرف و آن طرف می یکیشان از پنجره بالا رفت. آن یکی می دوید سمت در. همینطور پشت سر هم داد می زدند ای وای زندانیا ای داد زندانیا موقعی که داخل آسایشگاه دنبال زندانی های فراری می گشتند هنوز گیج خواب بودند بعد از مدتی ژاندارم قط کوتاه پرسید جمو توفنگم کجای برار؟ جمو هم روی پاشنه پایش شرخید داد زد توفنگ من کجاست؟ ای وای تموم به هم قطارش نگاه کرد و حیرت زده پرسید پسر، جمو، پیرنت کو او اورکوتت شلوارت کجاست قربانت بگردم. جمو به خودش نگاه کرد و فهمید با عرق و زیر شلواری دارد و سط آسایش جالان میدهد. او هم پرسید. برار، لباسای تو کجاست بست؟ قطار خودشان را کمی جمع جور کردند. تموم به یکی از کسانی که خنده کنن نگاهشان میکردند، با صدایی گریهدار گفت. زندانیا رو دیدی نکنه فرار کردن قربانت بگردم بعد سه جاندار برای گرفتن دو زندانی که از دستشان فرار کرده بودند به طرف راه رو دویدند اگر جلوشان را نمی گرفتند همانطور با عرق‌گیر و زیر شلواری می‌دویدند توی کوچه و داد میزدند زندانیا زندانیا به زور جلوشان را گرفتند سه جاندار گیج و منگ مانده بودند آن وسط بعد روی تخت خواب نشستند جمو سرش را میان دستهایش گرفته بود و به چپ و راست تلو تلو می‌خورد. جاندارم قدکوتا لبهایش جمع شده بود و کم مانده بود مثل بچه‌ها بزند زیر گریه. تمو یک ریز زیر لب میگفت هی هی هی وام هی. بعد از مدتی جمو گفت: بدبخ شدیم بابا. زندانیا دزد بودن. لختمون کردن و فرار کردن مدتی سکوت کرد بعد پرسید اینجا کجای قربانت بگردم یکی از مریض ها گفت اینجا مریض خونه است داداش کدوم ولایته؟ استانبول جمو از تمو پرسید یعنی چهجوری اومدیم اینجا؟ من چه بدانم جمو جاندارم قد کتا با لحنی که انگار کمک بخواهد شروع کرد به تعریف کردن ماجرا. سرکار و دو تا زندانی و تحویل موند. کاغذار و داد. گفت این دو تا زندانی از اون زرنگان. شل به جنبیم فرار میکنن. بال در میارن پرواز میکنن. جموع حرفش را قطع کرد. گفت دست رو اصلا واز نکنین. جاندارم قد کتا تعریف کرد. از اسکندرون سوار قطار شدیم قربانت بگردم بکردم. می رفتیم. من جلو در رو گرفتم. جمو جلو پنجره رو گرفت. قطار می رفت. ما هم توی قطار می رفتیم. حرف می زدم. جمو گفت حرف نزنین. قدقنه. یکی از دزدا گفت چرا حرف نزنیم؟ جمو هم گفت ما معمولیم و محضور. سرکر استوار دستور داده. من گفتم پسر جمو بذار حرف بزنن. استوار نگفت حرف نزنن. جمو گفت نه قربانت بگردم. همینجور حرف میزنن حرف میزنن سرمون گرم میشه فرار میکنن ها. یکی از زندونیا سیگارش رو در آورد. تمو گفت قربانت بگردم سیگار کشیدن قدقنه. زندونی گفت بی سیگار که نمیشه داداش. تمو هم گفت ما معمولی ما مزور سرکار استوار دست دور داده. یکی از زندونیا زد زیر آواز. من گفتم آواز قدقنه برار. صدا ببر زندونی گفت اگه آواز نخونم که این راه بد تموم نمیشه داداش. گفتم ما معمولیم و معذور به ما اینطوری دستور دادن جمو گفت بزار آواز بخونن گفتم آواز میخونن و میخونن سرمون گرم میشه اون وقت فرار میکنن و برار قطار میرفت توی یه و میستاد دوباره راه میافتاد و میرفت یکی از زندونیا واسه اون یکی داستان تعریف میکرد جمو گفت حرف زدن قد غنه برار حرف زدن موقوف زندونی گفت اگه حرف نزنیم این راه که تموم نمیشه جمو گفت ما مموری ما محضور به همون اینجور دستور دادن زندونی ها ساکت بودن قطار میرفت ما هم توی قطار میرفتیم قطار توی ایسکا داد ما هم وایستادیم یکی از زندونیا گفت بریم توی ایسکا آب بخوریم تمو گفت آب خوردن نداریم قدقنه. زندونی گفت آب نخوریم که میمیریم داداش. تمو گفت ما معمولی ما مزدور به همون این تاری دادن. گفتم بذار آب بخورن تمو. تمو گفت قربانت بگردم موقع آب خوردن فرار میکنن. قطار میرفت ما هم توی قطار میرفتیم. قطار وا میستاد ما هم توی قطار وا میستادیم. نگاه کردم دیدم یکی از زندونی خوابیده خابیده تمو کاریش نداره جمو کاریش نداره یه سو به زندونیه زدم گفتم خابیدن نداریم برار قدقنه زندونیه گفت اگه نخوابیم که این راه تموم نمیشه داداش گفتم ما مهموری و معذور بهمون همون اینجوری دستور دادن تمو گفت بزار بخوابن گفتم میخوابن و میخوابن ما را هم خواب میکنن بعد فرار میکنن میرن قربانت میرفت. ما هم میرفتیم قطار وامیستاد ما هم توش وایم قطار راه میافتاد ما هم راه میافتادیم شب شده یکی از زندونیا خمیازه کشید تمو گفت خمیازه کشیدن نداریم برار قدقنه زندونیه گفت اگه خمیازه نکشیم که این راه تموم نمیشه داداش تمو گفت ما چیکار کنیم برار ماموری ما به بهمون اینجوری دستور دادن قطار وایستاد یکی از زندونیا گفت از اینجا یه چیزی بخریم بخوریم. جمو گفت خوردن قدقن واربانت بگردم. خوردن نداریم. زندونیه گفت اگه نخوریم که این راهو نمیتونیم بریم. جمو گفت ما چیکار کنیم برار. سرکرست واردست دور داده. به جمو گفتن پسر بزا بخورن خب. جمو با وقتی از پنجره نون میخرن فرار میکنن میرن غربانت بگردم. قطار میرفت ما هم میرفتیم زندونیا حرف نمیزدند ما هم حرف نمیزدیم یکی از زندونیا گفت میخوام برم دست با آب من گفتم دست با آب رفتن قدغنه گفت کوچیکه. گفتم کوچیک و بزرگش قدغنه گفت نمیشه دست به آب نرفت که. گفتم ما کنیم کنیم مأموری و محذور به همون دستور دادن قطار می رفت ما هم می رفتیم. قطار وا می ما هم وا می استادیم زندونیا حرف نمی زدن. ما هم حرف نمی زدیم یکی از زندونیا به اون یکی چشمک زد منم به جمو گفتم یارو انگار می خواد فرار کنه چشمک می زنه زامن توفنگو زدم. یکی از زندونیا به اون یکی گفت تو چند چندتا سیگاری میکشی اونم گفت پنج تا سیگاری بار میزنم زنم و درجا دود میکنم اون یکی گفت سیگاری کشیدن کار مرداست تو نمیتونی پنج تا سیگاری بکشی اونم گفت پنجتا تا چیه؟ بیست تا هم اگه باشه میکشم اون یکی گفت سیگاری و مردا میکشن من اگه هشتاد تا سیگاری نکشم کلم داغ نمیشه. جموی ما از اون طرف گفت: راست میگه سیگاری کشیدن کار مردا. تمو هم گفت من سیگاری نمیکشم هر چقدر بکشم کم میاد واسه همین میخورم من گفتم پسر تمو این سیگاری چیچی چی هست تو ولایت ما مگه سیگاری پیدا میشه گفت تو نمیدونی مردا میکشن. هرسم گرفت گفتم کی نمیدونه من پسر مگه من از صبح تا شب سیگاری نمیکشم مگه تو میتونی قد من سیگاری بکشی تمو به جاندارم قد کوتاه گفت. نه قربانت بگردم این حرف به من نزدی به جمو زدی مگه نه جمو جمو گفت من نگفتم بیست سیگاری میکشم ده تا گفتم جاندارم قد کتا حرفش رو ادامه داد یکی از زندونیا گفت اگه راست میگین نفری یه سیگاری بار بزنیم و بکشیم جمو گفت من نمیکشم تمو گفت چرا برار بیا بکشیم جمو گفت من اگه بکشم واسه شما نمیمونه قربانت بکردم شروع که بکنم خیلی میکشم زندونیه گفت عیب نداره چیزی که زیاد داریم علفه <تصفح> جمو گفت من الفو نمیکشم میخورم برار شروع که بکنم تا یه مشت علف نخورم منو نمیگیره زندونیه گفت بخور وام بخور جونت سلامت تو بخور ما زیاد داریم از این علفه جمو علف گرفت و جوید و گورتش داد. اون یکی زندونی به سیگاری داد. تمو گفت توش علف کم گذاشتی قربانت بگردم پرش کن پرش کن تا بگیره تمون. زندونی سیگاری رو روشن کرد. یک کام گرفت. دادش به تمو. تمو یک کام گرفت. یک کام دیگه گرفت. زندونی گفت سیگاری باست دست به دست بگرده. جمو گفت قانون ما اینطوریه که یه نفری میکشن قربانت بگردم زندونیه یه سیگاری دیگه بار زد تا اون موقع سیگاری سیگاریشو تم کرده بود اون یکی سیگاریو هم از زندونیه گرفت یه سیگاری هم من روشن کردم تمو که قد چند تا سیگاری علف خورده بود گفت یه سیگاری هم واسه من روشن کنین یه سیگاری هم اون روشن کرد فرتو و فرت میکشیدیم قطار میرفت ما هم توی قطار میرفتیم قطار توی ایسکا میستاد. ما هم وامیستادیم قطار را میافتاد ما هم را میافتادیم تمو زد زیر آواز دختر فراش باشی با پیرهنای خشخشی عاشق تو میکشی وای عاشق تو میکشی جمو هم زد زیر آواز دلم تنگ و دلم تنگ و دلم تنگ آخ زمونه با من بیچاره کرد جنگ <تصفح> قطار میرفت، ما هم می رفتیم قطار وا میستاد ما هم وا آخ زمونه با من بیچاره کرد جنگ <تصفح> قطار تو ایسکا وا می زندونی رفت با این آب خود واسه ما هم آب آورد من هم زدم زیر آب سر راه درات مار سیاهی اول بر تو زند که بی <وفائی> دویان بر ما زند که آشقاییم <تصفيق> قطار میرفت زندونی ها میرفتن دستها سر راحت دراد مار سیاهی <تصفيق> قطار وایستاد ما هم وایستادین زندونی از ایسکا کل پاچه خرید تو آب کل پاچه علف قطی کرد میخوام برم کو شکار آهو تفنگ من کو لیلی جان توفنگ من کو. <تصفيق> جمو پرسید مگه زندونیا دو تا نبودم قاربانت بگردم. زندونیا سه تا شده بودن. دطار میرفت ما هم میرفتیم جمو پرسید مگه زندونیا دو تا نبودم قربت بگردم. زندونیا چهار تا شده بودن. سر راحت درات مار سیاهی اول بر تو زند که بیوفایی قطار میرفت زندونیا زیاد می شدن دیگه اونجا جا نمی شدیم بشو بشو متر نخوام سیایی متر نخوام بلایی متر نخوام سیاه سوخته تر نخوام تمو گفت سیگاری و مردا می کشن. من تو ولایتمون از صبح تا شب سیگاری می کشم مون قرمزی تو باشی قطار میرفت ما هم توی قطار میرفتیم. <تص> تمو حرف جاندارم قد کوتاه را برید و یک دفعه فریاد زد. پسر قربانت بگردم. قطار نمیره. زندونیا میرن. ما میمونیم برار. جاندارم قد کوتاه گفت. ما خوابیدیم قربان. قطار میرفت. زندونیا میرفتن. ما میموندیم. ما میمونیم برار. جاندارم قد کوتاه کم مانده بود گریش بگیر. تمو سرش را میان دستهایش گرفته بود و به و راست را تلو تلو میخورد. جمو گفت قطار میره ما نمیریم قطار میره ما نمیریم